تصادف شبانه اثر پاتریک مودیانو ترجمه حسین سلیمانی نژاد با صدای علی دنیوی ساروی تهیه کننده دامون آزری کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر چشمه فصل اول سالها پیش موقعی که دیگر داشتم پا به سن بلوغ میگذاشتم. دیر وقت از میدان پیرامید میگذاشتم تا به کنکورد بروم که یک هو اتومبیلی از تاریکی بیرون آمد اول خیال کردم از بغلم رد می شود. ولی بعد درد شدیدی از غزک پا تا زانویم احساس کردم افتادم روی پیاده رو ولی توانستم بلند شوم اتومبیل از مسیرش خارج شده و با سر و صدای خورد شدن شیشه ها به یکی از تاغ هلالی میدان خورده بود. در ماشین باز شد و زنی تلو تلو خوران بیرون آمد. مردی که جلوی ورودی هتل زیر تاغ ایستاده بود، راهنماییمان کرد توی سالن. من و زن روی کاناپه چرمی قرمزی نشستیم و او جلوی پیشخان پذیرش تلفن می زد. فک گونه و پیشانی زن زخمی شده بود و خونریزی داشت مرد سبزی ای با موهای بسیار کوتاه وارد سالون شد و آمد سمت ما بیرون چند نفر جمع شده بودند دور اتومبیلی که درهایش باز بود یکیشان چیزهایی یادداشت میکرد شبیه گزارش وقتی میخواستیم سوار ماشین پلیس امداد شویم فهمیدم پای چپم بیکفش مانده. من و زن شانه به شانه هم روی نیمکت چوبی نشسته بودیم. موخرمائی چهارشانه روی نیمکت روبروی ما نشسته بود. سیگار میکشید و هر از گاهی نگاه سردی به ما میانداخت از پشت توری پنجره میدیدم داریم از خیابان ساحلی تویلری رد می شویم. فرصت نداده بودند کفشم را بردارم با خود فکر کردم تمام شب می ماند جا وسط پیاده رو نمیدانستم چیزی که جا گذاشتم کفش بوده یا حیوانی که تازگی ها ولش کرده بودم سگ دوران کدکی که وقتی حوالی پاریس تو خیابانی به اسم دکتر کورزن زندگی می یک اتومبیل زیرش گرفت همه چیز توی سرم درهم و برهم هم شاید جمجمم موقع افتادن ضربه خورده بود چرخیدم سمت زن از اینکه مانتو پوست پوشیده بود تعجب کردم یادم آمد زمستان است تازه مرد روی ما هم پالتوتنش بود من یکی از آن کتای بلندی که توی بازار لباسهای دست دوم پیدا می پوشیده بودم مطمئن زن منطوع پوستش را از آنجا خریده بود پوست خز، سمور ظاهرش خیلی آراسته بود و با زخمای صورتش تناسب نداشت روی کتم کمی بالاتر از جیبها چند لکه خون دیدم کف دست چپم خراش بزرگی افتاده بود لابد لکه های خون روی کتم از آنجا آمده بودند زن راست نشسته بود اما سرش پایین بود. انگار نگاهش را به چیزی روی زمین دوخته بود. شاید به پای بدون کفش من. موهایش خیلی بلند نبودند. زیر نور سالن به نظرم بور می آمد ماشین پلیس در خیابان ساحلی نزدیک سنجر منلوکسرووا پشت چراغ قرمز ایستاد. مرد همچنان در سکوت و با نگاه سردی زیر نظرمان داشت دست آخر احساس کردم جرمی مرتکب شدم چراغ سبز نمیشد. کافه نبش خیابان ساحلی و میدان سنجر مندک سروها که پدرم معمولاً آنجا با من قرار میگذاشت، هنوز چراغش روشن بود وقت فرار بود شاید وقت کافی بود از مرد روی نیمکت خواهش کنیم بگذارت برویم. ولی احساس می کردم قدرت به زبان آوردن کوچکترین حرفی را ندارم. صرفه کرد از آن صرفه های غلیز سیگاری ها. ترجب کردم که صدایی شنیدم. از موقع تصادف سکوت عمیقی اطرافم را پر کرده بود و اینگار چنواییم را از دست داده بودم. توی خیابان ساحلی حرکت میکردیم. وقتی ماشین پلیس رفت روی پل، حس کردم دست زن مچم را فشار میدد. لبخند میزد. شاید میخواست قبط قلب بدهد ولی من اصلا نمیترسیدم. حتی فکر میکردم قبلا هم را در موقعیت های دیگری دیده ایم و او همین لبخند را روی لبش داشته. کجا دیده بودمش؟ مرا یاد کسی میانداخت که مدت ها قبل میشناختم مرد روبروی ما خواب رفته و سرش روی سیاش افتاده بود. خیلی محکم مچم را فشار میداد. شاید کمی بعد موقع پیاده شدن از ماشین من را با دست بند به هم میبستند. بعد از آن که ماشین از روی پل رد شد. از زیر ورودی سرپوشیده ای گذشت و در محبتی اورژانس بیمارستانی استاد. حالا توی سالن انتظار نشسته بودیم. همچنان در حضور مردی که نمی‌دانستم وظیفه اصلیش چیست. مأمور پلیس برای زیر نظر گرفتن ما؟ چرا؟ می‌خواستم از خودش بپرسم ولی پیشاپیش می‌دانستم صدایم را نخواهد شنید. از آن به بعد صدایم از ته چا در می آمد این اصطلاح زیر نور زننده سالن انتظار به ذهنم رسید من و زن روی نیمکت مقابل دفتر پذیرش نشسته بودیم مرد رفته بود تا با یکی از زنهای دفتر حرف بزند کاملا نزدیک هم بودیم تماس شانش را با شانهی خودم حس می کردم دوباره برگشت و با فاصله از ما سر جایش لب نیمکت نشست مرد موهنایی، خابه رهنه با کافشن چرمی و پیژامه مدام توی سالن انتظار راه می رفت و با صدای بلند به زنهای دفتر می توبید که چرا به او بی مدام از جلوی ما رد می شد و دنبال نگاه هم می کشت ولی نگاهش نمی کردم. چون می ترسیدم با من حرف بزند یکی از زنهای پذیرش سراغش رفت و با ملایمت سمت خروجی خلش داد باز برگشت تو سالن و این بار مثل سگی که تا حد پاره شدن گلویش واق واق می شروع به گله و شکایت کرد هر از گاهی یک مرد یا یک زن همراه مأموران حراست به سرعت از سالن میگذشتند و وارد راهرو روه رو, رو, رو از خودم میپرسیدم این راهرو رو کجا می رسد و آیا به زودی ما را هم حل میدهند آنجا؟ دو زن میان چند مأمور از سالن انتظار گذشتند فهمیدم تازه از ماشین پلیس پیاده شدند شاید همونی که ما را اینجا آورد مانتوی پوستشان مثل مانتو بغلدستی شیک بود و مثل او ظاهر بسیار آراستهی داشتند صورتشان زخمی نبود اما به مچهایشان دست بند زده بودند مخرمایه چارشانه اشاره کرد بلند شویم بعد ما را برد ته سالن با یک کفش نمیتوانستم راحت راه بروم با خودم گفتم بهتر است آن یکی را هم در بیاورم درد شدیدی پیچیده بود توی پاشنه پای برهنهام پرستاری جلوتر از ما وارد اتاق کوچکی شد که دو تخت تا شو داشت روی تخت ها دراز کشیدیم مرد جوانی آمد تو روپوش سفیدی پوشیده بود و تهریش داشت به برگهی نگاه کرد و اسم زن را پرسید زن جواب داد شکلین بوسرشان اسم من را هم پرسید پای بدون کفشم را معاینه کرد شلوارم را تا زانو بالا زد و ساق پایم را هم بررسی کرد پرستار سمت زن رفت تا کمکش کند منتوش را در بیاورد بعد زخموی صورتش را با پنبه تمیز کرد آن وقت هر دو رفتند و چرا خواب را روشن گذاشتند در چار بود مرد توی روشنایی دالان قدم میزد. ظاهر شدنش در چارچوب در مثل ساعت دقیق بود زن کنارم دراز کشیده و منطوع پوستش را مثل پتوی روی خودش انداخته بود بین دو تخت جایی برای میز پاتختی وجود نداشت دستش را سمتم دراز کرد و مچم را فشار داد به دست بندهای آن دو زن فکر کردم و باز به خودم گفتم به دستهای ما هم بالاخره دستبند بند می زند. مرد از قدم زدن در دالان دست برداشته بود داشت آهسته با پرستار حرف میزد. بعد پرستار آمد توی اتاق دنبالش مرد جوانی آمد که تحریش داشت چراغ را روشن کردند بالای سرم ایستادند سمت زن چرخیدم زیر تو پوستش شانه بالا انداخت. انگار میخواست بگوید افتاده توی تله و دیگر نمیتوانیم فرار کنیم مخورمایی چهارشانه وسط چارچوب در ایستاده بود و جند نمیخورد پایش کمی از هم باز بودند و دستهایش را توی هم قلاب کرده بود. چشم از ما بر نمی داشت. لابود خودش را آماده می کرد که اگر خواستیم بزنیم به چاک، جلمان را بگیرد. زن دوباره لبخند زد. درست مثل پوزخندش توی ماشین پلیس. نمیدانم چرا این لبخند نگرانم کرد. مردی که تحریش داشت و روپوش سفید پوشیده بود، روی سرم خم شد. و به کمک پرستار یک جور پوزه بند بزرگ و سیاه روی بینیم گذاشت اتر را بالا کشیدم و از هوش رفتم